چه شده؟ یک آمبولانس آنجاست؟ فکر می کنم دو ماشین با هم تصادف کردند؟ چقدر شلوغ است؟ چرا مردم همه آنجا ایستادند؟ همیشه همینطور است؟ ببخشید جناب پلیس راه بسته است؟ نخر بعد از چند دقیقه راه باز می شود؟ آقای پلیس چه شده؟ تصادف. یک موتورسیکلت و یک خودروی سمند. مثل اینکه حال موتورسوار خوب نیست. بله. او را با آمبولانس به بیمارستان میبرند. علت تصادف چه بود؟ موتورسیکلت با سرعت از چراغ قرمز عبور کرد و با سمند تصادف کرد. موتورسوارها محتاط نیستند. به طرف چپ بپیچید و از خیابان راضی بروید اما مقصد ما خیابان بهار است از خیابان راضی به طرف راست بپیچید و از آنجا به خیابان بهار بروید